خب بسم الله الرحمن الرحیم افعال المقاربة و والشروع و افعال مقاربه رجا و شروع به خاطر همین سه گروه از امثله رو آورده است اگر دقتی بفرمایید گروه اول دوم سوم در گروه اول افعال مقاربه رو میاره گروه دوم افعال رجا رو میاره و گروه سوم افعال شروع رو می چرا این افعال رو بعد از لیسه و لاته و اینا آورد چون با هم دیگر مناسبت دارند درسایی رو که پشت سر هم میارد بدون مناسبت نیستند افعال مقاربه رجاء و شروع مثل کانه هستند مثل چی هستند؟ یعنی اسم رو مرفو میکنند و خبر را منصوب پس دیدید این آقا این استاد بزرگوار بهترست بگوییم چقدر دقت فرموده است؟ تا این کتاب به این قشنگی رو برای شما فراهم آورده است البته کتب قدیم هم لطفای خاص خودشون دارند که انشالله اگر وقت شد که الفیه رو با هم بخونیم انشالله لطفه هایی رو که در اون کتب بزرگ هست لمس خواهیم کرد کادت شمس و تغیب کادت سفینه تو تغ و روق کربشتاو ینقضی کربلماو أوشك المال أن ينفد يوشك المريض أن يبرأ اگر أمثله هم ديقتشون می‌بینیم که قواعدی رو در این امثله گنجانده است ولی من خاین قواعد رو همون موقع قواعد رو می‌خونیم تکراری نشوند قاعده قو... امثله گروه دوم اصدق أن ينفرج اصصائد أن يصيب حر الغمام أن ينقشع حر الغائب أن يحضر حراء یعنی امید هست یعنی رجا هست اخلاو لقا المذنبو انیتوب اخلاو لقا الهوا و انیعتدل یعنی امید است که گناهکار توبه کند امیدواری هست که گناهکار چه کند؟ توبه کند اگر بخوایم ترکیبش کنیم میگویم اخلاو لقا فعل ماضی مبنی بر فتح المذنبو دیگه نمیگیم فاعلش چون فعل فعل ناقصه هست مثل کانه اسم و خبر دارد نه فائل و مفعول میگویم المذنب و اس مرفو بازمه ایتوبه خبر هست که ان ان ناسبه هست یتوبه فعل مزاره منصوب با فتحه این جمله میشه یتوبه که فعل با فائلش هست میشن یه جمله خبر اخلا چرا؟ چون شرط خبر افعال مقاربه رجا و شروع همین هست که خبرشون جمله باشه اگر در امثله دقت کنید تمام امثله میبینید که خبرها همشون جمله اند، جمله فعیلی هند میبینیم که خبرها همشون چی هست؟ تقیبو تقریقو یانقضی یزمد ان یانفد ان یابرا ان یانفرد ان یوسیب یعتدل یبکی یتحرک تمتر یقصف یبلا ینهر همشون جمله فعیلی هند بعضی با ان هستند بعضیا بدون ان چون در قواهی مساله رو توضیح میده. شراعت کفلو یبکی، شراع الجشو یتحرک، انشعت السماعو تومتر، انشع الرعدو یقصف، اخذ ثوبو یبلا، اخذ البناو ینهار. اخذ فیل شروع هست، ماضی هست، مبنی بر فتحه البناو اسمش هست، با زمه، ینهارو، فیل مزاره، با زمه، فیل مزاره فائلش هو هست، که برمی به ببنا، فعل مزارب با فاعلش میشند یه جمله میشند خبر اخذه محلن منسوب. بله. چون خبر افعال مقاربه و رجاع و شروع مثل خبر کانه جز منسوب آتن. روی قواعد قاعده شخص سفهوم کتاب من الافعال التي تعمل و عمل کانه از جمله افعالی که عمل کارده رو انجام میدنلف افعال المقاربه یک افعال مقاربه و هی کادا، کربه و عشک هستند تدل قرب و وق خبر این درلالت برین میکنه که خبر نزدیک که واقع شود. نزدیک است که خبر چه شود؟ موقع میگویم کاده شمس و تغیب. یعنی نزدیک است که غروب چه شود؟ صورت بگیرد. با افعال جااح هستند، عصا حرائخ لو لقاها السن ستاها تدل على رجائي وقوع الخبر إلا دلالت برين مكنام كي أميد حسكي خبر واقع شباد أميد حسكي خبر واقع شباد كدر أمسل قروه دفوما واردبود ستاها السن وقروه سوم أفعال شروع السن جيم أفعال شروعي وهي أفعال شروع بارتن دعاز شرع أنشأ أخذ وطفق وجعل وعليق وقام وعقبل وهب یکی از اینها مضاعف است و تدلل على شروعی و البدء في الخبری اینا دلالت بر چی میکنن؟ لازم معنایی دلالت بر شروع میکنن که خبر داره شروع میشه مثلا شرعت الطفل يبكي یعنی گریه طف داره چی میشه؟ شروع میشه در قرآن اومده اخذا نلا لا لا بغير از این يخسفون من ورق الجنه چی قبلشون فعل شروع؟ اخذا هست؟ یه تفیقه تفیقه یخزیفانی من ورق الجنه تفیقه از افعال چه هست؟ شروع هست قاعدهش 64 سچارمه کتاب یشترتو فی هاده الافعال ان یکون خبرها جمله فعلیتا شرط هست در این افعال که خبرشان جمله چی باشد؟ جمله فعلیه باشد که گفتم در قبلش فعلوها مضارع اون مجرد ولی این فعل هم همیشه چه هست؟ مزاره هست شرط هست که خبرشون جمله فعلیه باشه و اون فعل هم فعل چه هست؟ مزاره هست مجرد من ان دو حالت داره یا مجرد از ان هست یعنی ان روش نیومده مانند شرعت تفلو یبکی ان روش نیومده روی کدوم ان نمیاد مع کاده و کربه و افعال شروع کاده و در امثله گروه اول دقت بفرمایید کادت شمس و تغیب کربه شتا و یعنی قضی اینجا میبینید که ان روی فعل مزاره نیومده پس این فعل مزاره مجرد از ان هست یعنی ان روش نیومده چه زمانی روش نمیاد سر کاده نمیاد سر کربن نمیاد و افعال شروع شرع و انشعه و اخذه روی اینا نمیاد البته به شکل قلیل روی کاده و کربه نمیاد به شکل بله ولی اکثر و غالب این است که روی اینا نمیاد و مقرونون بها یعنی فعل مزاره همراه با آن هست چه زمان چه فعل هایی؟ مع اوشکه اوشکه اوشک اوشک المال و دیدید که فعل مزاره همراه با انه؟ طول زمانی که خبر اوشکه فعل مزاره باشه همراه با چه, چه میاد؟ خودش داره میگه و اصا و حرا و اخلولقه و قد یقترینو، خب، پس با اینا، زمانی که، زمانی که، فعل مزاره، خبر این افعال بشه، همراه با چه هست؟ یعنی اوشکا و اصا و حراو اخلو لقا، همراه با ان هست، یه نقطه دیگه رو در آخر میفرماید، و قد یقترینو بها علاقلت، میگه فعل مزاره همراه با ان هست، ولی کم، چه زمان؟ زمانی که خبر کاده و کربه باشد، کمایه من منها علاقله همان طور که فعل مزاره مجرد از ان هست ولی خیلی کم در اوشکه و عصا علاقله خیلی کم در چی؟ در اوشکه و عصا پس اینها احکاماتی بودن از افعال مقاربه و رجاع و شروع که خیلی زیبا فرموده بودند یه نقطه دیگری هم می فرماید و اون این هست که میگه اصا و اخلولقا و اوشکا گاهی موقع تامه بکار می روند، گاهی موقع چی بکار می روند، یعنی فقط فائل دارند اکتفای به فائل می کنند خبر دیگه لا دارند. اون موقع شرط هست که خبرشون مصدر معول باشد از ان و مزاره از چی؟ ماننده اصا انینفری جدیقو میگویم اصا از افعال رجاه هست انینفری جدیقو ان ینفریج ها چه هست؟ ان به اضافه ینفریج ها مصدر معاول هستند که فائل هستند که چه هستند؟ گفته بود که اگر اینها تامه به کار روند فائلشون مصدر معاول از ان و فعل مزاره است. مصدر معاول از ان و فعله چون ما میتونیم دوسیله ما و فعل ماضی هم مصدر دروش کنیم ولی داره میگه که مصدر معاولشون از چه از آن و فعلا مزاری فعلا قواعد اصلی رو بیاموزید که در کتاب های بعدی انشالله ببینید چرا به نظر شو کتاب به شکل ابتدایی متوسطه و عالی تقسیم می شوند؟ به خاطر اینکه هر بحثی رو در موقع خودش بخونید دیگه ذهناتون نورید که فراتر تمام نکات رو درون درس بیاموزید اجوری بهترین شیوه یاد گرفتنش است پس این بود از احکامات جان یه قاعده بله مثل هذه الافعال فی املها ما تصرف منها می مثل همین افعال هستند در عملشون که از این افعال متصرف باشند یعنی چی مثلا دقت بفرمایید دقت بفرائید مثلا کاده کاده چه عملی رو انجام داد؟ هر چیزی که از کاده متصرف بشه همین عمل رو انجام میشه یا کادو یا کادو البرقو ای اختفاء ابو هم یا کادو میگیم عمل چی رو انجام داد؟ کادر رو پس این قاعده چه سوپنچو همین نقطه رو میگه. میگه این افعال چه عملی رو انجام میدن مثل همین عمل رو هر آن چه که از اینها متصرف شود انجام میدهد آره آره یکاد آره. البرقو یختفوا آره آره. آره. ابو یختفوا، یختفو ان یختفه نداره یکاد البرقو یختفو ابو یک جایی هست که ان داره لم یکد يقد؟ لم یکد بغیر از این آره رسید بله بله چون بله بله کاده کاده گفته بود زمانی که کاده باشد فعل مزاره مجرد از ان هست ذهنم رو چیز دیگر بود پس زمانی که زمانی که فعل مقارب ما کاده باشد اون موقع خبر مجرد از از ان هست بله یا كاد البرق يخطف ابصارهم كلما ادامهش دیگه نه؟ كاد السماوات اتفقت بله كلنت پس خبر كاده مجرد از ان هست مالف تو شما چه نذاریم خیلی خوش می من موافق با هر نوع عملی هستم که شما انجام دهید چون شما مثل فعل هستید رو